عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. این کلاس کلاس بررسی کتاب, کتاب ها کتاب مقدس هست. معلمین سکولار زیادی هستند که بر این عقیده هستند که دنیا روز به روز بهتر و بهتر میشه. در حالی که تاریخ و کتاب مقدس به ما میگن که این حقیقت نداره. زمانی میرسه که خدای قادر مطلق خواهد گفت بس و این روز بزرگ خداوند خواهد بود. آیا آماده هستین؟ آیا اهداف زندگیتون رو تکمیل کردین؟ بین با هم به سفنی های نبی گوش کنیم که درباره آمدن روز خداوند نبوت کرده. ضمن سفرمون در کتاب مقدس که از کتاب پیدایش شروع شد، به قسمت انبیا در عهد قدیم رسیدیم. در جلسه امروز های نبی رو مطالعه خواهیم کرد. به راحتی میتونیم بفهمیم که سفنیا در چه دوره ای از تاریخ زندگی میکرده چون ضمن بررسیمون در ابتدای کتاب سفنیا می‌بینیم که اطلاعات تاریخی ارزشمندی ثبت شده کتاب سفنیا به ما میگه که او یکی از انبیایی هست که در دوره یوشیا زندگی و خدمت میکرده یوشیا یکی از پادشاهان خوب یهودا بوده که بیداری روحانی آورد و اشتیاق به کلام خدا رو در مردم زنده کرد یادتونه که وقتی داشتیم کتاب‌های تاریخی رو مطالعه می‌کردیم گفتیم که در دوره یوشیا تومارهای کتاب مقدس ضمن تعمیر معبد پیدا شد. در اون زمان قوم یهودا کاملا از دین برگشته بودند و به جایی رسیده بودند که حتی فراموش کرده بودند چیزی به نام کلام خدا وجود داره. وقتی این تومارهای کتاب مقدس خوانده شد، یوشیای پادشاه از شنیدن کلام خدا به خود لرزید. او ترسید چون خود او و قومش اون طور که کلام خدا میگفت گفت زندگی نمیکردند یکی از افراد خاندان ازرا بود که تومارهای کتاب مقدس را پیدا کرد و در اثر همین کشف بیداری عظیمی رخ داد و علاقمندی شدیدی نسبت به کتاب مقدس در مردم پدید آمد بسیاری از محققان معتقدند که سفنیا عامل اصلی محرکه این بیداری و اشتیاق به کلام خدا بود که تماماً از خدمت ازرا سرچشمه می‌گرفت بیداری و علاقمندی به کلام خدا رویداد مهمی در تاریخ قوم یهود بود جالبه که سفنیا هیچ اشاره ای در نبوتش به این بیداری و علاقمندی به کتاب مقدس نمی دلایل احتمالی کمی برای این وجود داره یکی این بود که سفنیا فروتن بود و فقط به خاطر فروتنی به این اشاره نکرده و یا اینکه او این پیام رو قبل از بیداری نوشته که این هم یکی از دلایل اون هست به قول بعضی از محققین دلیل دیگر شاید این بوده که این بیداری و علاقمندی به کتاب مقدس دوام چندانی نداشته و تأثیر مندگاری در تاریخ یهود نداشته. سفنیا یکی از اون انبیایی هست که خون نجیب زادگی در رکهاش بود. سفنیا از نوادگان پادشاه هزقی بود. به خاطر شاهزادگی، سفنیا عقیده داره که آزاد مستقیما با پسران پادشاه صحبت کنه که در باب یک آیه هشت نبوتش این کار رو انجام میده. این شاهزادگی به سفنیا اجازه ورود به بارگاه یوشیا رو میداد و همین به او امکان میداد که نقش بزرگی در بیداری روحانی بعهده بگیره وقتی کتاب سفنیا رو می, خونید، می بینید که کتاب نبوتی او فقط سه باب داره وقتی سه باب کتاب او رو میخونید طولی نمی کشه که متوجه پیام صفنیای نبی میشید مثل یوئیل نبی پیام سفنیا هم در لفافه کلمات روز خداوند پیچیده شده سفنیا و یوئل نبی وجوه مشترک زیادی دارند چون هر دوی آنها بر مفهوم روز خداوند تاکید دارند. سفنیا از این عبارت بیش از هر نبی دیگری استفاده میکنه و بر مختلف بیشتری از دیگران بیا از این واژه استفاده میکنه. وقتی یوئل روز خداوند رو می میکرد، اون رو در ابعاد مختلفی می میکرد. یوئل به بلای ملخا نگاه کرده و گفته اون روز خداوند بود. دیگران بلای ملخ ها رو به عنوان یک مصیبت و فاجعه می اما یویل گفت نه اون روز خداوند بود یویل به قهدی که در اثر حجوم ملخ به وجود آمده بود نگاه کرد و گفت این روز خداونده یویل به آینده نگاه کرد و اسارت بابل رو دید و گفت روز خداوند می آید وقتی بابلی ها آمدن و قلبه کردن اون روز روز داوری خداوند بود بعد مثل بیشتر انبیا یوئیل هم به قرنهای آینده نگاه کرد و مععزه کرد و گفت روز وحشتناک خداوند می آید. به طور خلاصه یویل روز خداوند رو در چهار بود موعظه کرد. یادتونه که گفتیم کاربرد عملی و شخصی پیام یوئیل نبی این بود که به گذشته نگاه کنید. شاید به شرایطی که مربوط به تولد شما میشه که آیا شما برای این جهان مفید بودید یا بیفایده و بگید اون روز خداوند برای من بود به شرایط فعلیتون نگاه کنید و بگید این روز خداوند برای منه بعد به جلوتر و به روز مرگتون نگاه کنید یا به آمدن خداوند هر کدام که زودتر واقع بشه و در پذیرش اون روز بگید اون روز روز خداوند برای من خواهد بود یا روز خداوند برای من می آید پیام صفنیای نبی هم همون پیام اساسیه که یویل موعظه کرده اگرچه سفنیا وقتی در مورد روز خداوند موعظه میکنه برون روز بزرگ و وحشتناک خداوند در آینده موعظه میکنه. شاید ها در بعضی اوقات به اسارت بابلیها اشاره میکنه. وقتی این کتابهای نبوتی رو میخونید خیلی سخته که وقایع مختلف رو از هم جدا کنید. وقتی نبوت رو مطالعه بکنید، خواهید فهمید که این یک چالش برای شما هست. مثلا های بزرگ مربوط به عیسا رو ملاحظه کنید. های کوه زیتون او اونجا که شاگردان از او سوالاتی درباره پایان دنیا میپرسند اونها از او میپرسیدند این وقایه که اتفاق خواهد افتاد نشانه های بازگشت تو و پایان جهان چه خواهد بود در پاسخ به سوالات اونها عیسی در متی 24 و 25 صحبت های کوه زیتون رو به ما میده وقتی عیسی سخنان نبوتیش رو با ما در میون میذاره خیلی سخته که بتونیم بعضی از وقایه آینده رو در رابطه با بازگشت ثانویه عیسی از هم جدا کنیم خیلی سخته که رنج عظیم از نابودی اورشلیم رو که در هفتاد بعد از میلاد اتفاق افتاد جدا کنی. به نظر میرسه که این موضوع در تمام کتاب‌های نبوتی صدق می‌کنه. نبوت انبیا برای ما مثل هاش شل قلمکاری هست. شما باید از درون اون مواد تشکیل دهنده‌اش رو جدا کنید. باید از خودتون بپرسید آیا اونها به زمان‌های آخر اشاره می‌کنند و درباره بازگشت عظیم جغرافیایی از پراکندگی صحبت می‌کنند؟ آیا بازگشت روحانی اسرائیل رو در ایام آخر پیشگویی میکنند شما باید خودتون اونها رو حل کنید و اون وقایه نبوتی رو قربال و از هم جدا کنید وقتی سباب کتاب صفنیا رو میخونید میشنوید که صفنیا در مورد روز خداوند صحبت میکنه میشنوید که صفنیا در مورد روز خداوند صحبت میکنه اگرچه وقتی ها در مورد روز خداوند موعظه میکنه با این حال او گاهی در مورد آمدن بابلیا ها و نابودی اورشلیم صحبت میکنه. همون کاری که بسیاری از این انبیا هم کردند. صفنیو اساساً در مورد آمدن روز خداوند در آینده و صحنه روز آخر صحبت میکنه. در کتاب مقدس شما جاهای متعددی رو میبینید که انبیا به این صحنه نهایی از روز خداوند اشاره میکنن و قالبا اون روز رو روز عظیم خداوند میگن یا روز عظیم و وحشتناک خداوند. شرح زیبایی از اون در هست. وقتی نبی ابری میگفت که چیزی پیش خواهد اومد، اونقدر از پیش آمدن و اون واقعه مطمئن بود و اون رو طوری شرح میداد که محققین به اون مازی نبوتی که چیزی مثل مازی بعید هست میگن. این فعل برای اعمالی که در گذشته اتفاق افتاده به کار میره. نویس بعد از اینکه یک فاجعه بزرگ رو پیشگویی میکنه، در مزمور 46 میگه: بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید که چه خرابیها در جهان پیدا نمود. مثل این میمونه که فرماندار در هلیکوپتر بر فراز منطقه آسیب دیده در پروازه. مزمور نویس به شما نشون میده که این ویرانی در نتیجه چه چیزی هست. او به شما میگه که این حاصل روز عظیم و وحشتناک خداونده. باب سه دوم پتروس هم روز خداوند رو شرح میده. پتروس درباره این واقعیت صحبت میکنه که استهزاکنندگان و شکاکان به روز خداوند شک میکنند که آیا روز خداوند خواهد آمد؟ و به این خاطر پتروس میگه اما ای عزیزان این حقیقت از شما پنهان نماند که در نظر خداوند یک روز مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز میباشد. خداوند در انجام آنچه وعده داده است آنچنان که بعضیها گمان میکنند نمی کند بلکه با صبر شما را تحمل مینماید. زیرا نمیخواهد کسی نابود شود بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند. بعد پتروس روز عظیم وحشتناک خداوند رو شرح میده روز خداوند مانند یک دزد خواهد آمد در آن روز آسمان ها با صدای شدید ناپدید خواهند شد عناصر سوخته شده از بین خواهند رفت و زمین با هرچه درانست است خواهد خواهد گشت با این کلمات پطرس صحنه نهایی روز عظیم و وحشتناک خداوند رو توصیف میکنه هجهی نبی هم روز خداوند رو شرح میده هجهی به ما میگه روزی خداوند این زمین رو برخواهد داشت مانند کودکی که یک جغجغه رو برمیداره و اون رو تکون خواهد داد بسیاری از این انبیا این تمثیل تکان دادن رو به کار بردند میگه خداوند زمین را متزلزل خواهد ساخت تا اینکه تنها چیزهایی که تزلزل ناپذیر هستند باقی بمانند در باب دوازده کتاب عبرانیان نویسنده تفسیری از نبوت حجع به ما میده نویسنده کتاب عبرانیان به ما میگه وقتی حجع گفت خداوند زمین را متزلزل خواهد ساخت، او کلمه‌ای رو به کار میبره که معنیش اینه: تمام چیزهایی که تزلزل پذیر هستند متزلزل خواهد ساخت تا اینکه تنها چیزهایی باقی بمونند که تزلزل ناپذیرند. بعد نویسنده عبرانیان ما رو به چالش می‌کشه که ایمان داشته باشیم ما پادشاهی داریم که تزلزل ناپذیره. آشکارا چالش اینه که وقتی خداوند این زمین را متزلزل می‌کنه تا هر چیزی که تزلزل ناپذیر هست باقی بمونه آیا چیزی از شما به جا خواهد ماند؟ آیا شما بنیادهای روحانی در زندگیتون دارید که تزلزل ناپذیر باشند؟ این لپ مطلب کاربرد این آموزه در مورد روز عظیم و وحشتناک خداوند هست. وقتی سفنیا روز خداوند رو موزه میکنه او چیزی رو شرح میده که من بهش جارو کردن از بالا تا پایین میگم. یک پاکسازی کامل. این چیزی که وقتی من صفنیا رو می خونم بهش فکر می کنم چون بارها و بارها صفنیا این عبارت رو به کار می بره. خداوند می گوید که همه چیز را رو از روی زمین بالکل هلاک خواهم ساخت انسان و بهایم را هلاک می سازم مرغان هوا و ماهیان دریا و سنگهای مسادم را با شریران هلاک می سازم و انسان را رو از روی زمین منقطع می نمایم قول خداوند دین است ببینید پیام اساسی صفنیا اینه که روز خداوند روز نهایی و روز تحولات عظیم خواهد بود روز خداوند تنها به اسارت رفتن بخش خاصی از قوم برگزیده خدا به بابل و بعد بازگشتن از اون اسارت نیست وقتی سفنیا از روز عظیم و وحشتناک خداوند به عنوان روز پاکسازی کامل صحبت میکنه داره میگه که در اون روز انسان و حیوانات از روی زمین محو خواهند شد ماهیان دریا پرندگان آسمان و انسان از صحنه روزگار محو خواهند شد روز بزرگ خداوند اونطور که سفنیا موعظه میکنه روز ویرانی و نابودی نهایی خداوند خواهد بود. روز عظیم و وحشتناک خداوند تأکید اصلی نبوت صفنیای نبی هست. نبوت او اینطور شروع میشه. کلام خداوند که در ایام ابن آمون پادشاه یهودا بر سفینیاپن ابن کوشیاپن جدالیاپن ابن آمریاپن هزقیا نازل شد. خداوند میگوید که همه چیزها را از روی زمین بالکل حلاک خواهم ساخت انسان و بهایم را حلاک میسازم، سازم مرغان هوا و ماهیان دریا و سنگهای مسادم را با شریران حلاک میسازم و انسان را از روی زمین منقطع می نمایم قول خداوند این است و دست خود را بر یهودا و بر جمیع سکنه اورشلیم دراز می نمایم و بقیه ی بل و اسمهای معبدان و کاهنان را از این مکان منقطع می سازم و آنانی را که لشکر آسمان را بر بامها می‌پرستند و آن پرستندگان را که به یهوه قسم میخورند و آنانی را که به ملکم سوگند میخورند و آنانی را که از پیروی یهوه مرتد شدهاند و آنانی را که خداوند را نمیطلبند و از او مسئلت نمینمایند به حضور خداوند یهوه خاموش باش و آنانی را که از پیروی یهوه مرتد شدهاند و آنانی را که خداوند را نمیطلبند و از او مسئلت نمی نمایند. به حضور خداوند یهوه خاموش باش زیرا که روز خداوند نزدیک است. چون که خداوند قربانی محیا کرده و دعوت شدگان خود را تقدیس نموده است. و در روز قربانی خداوند واقع خواهد شد که من بر سروران و پسران پادشاه و همه آنانی که لباس بیگانه می پوشند خواهم رسانید. در آن روز بر همه آنانی که بر آستانه می جهند عقوبت خواهم رسانید و بر آنانی که خانه خداوند خود را از ظلم و فریب پر می سازند و خداوند می گوید که در آن روز صدای نغره ای از دروازه ماهی و ولوله ای از محله دوم و شکستگی عظیمی از تلها مسموع خواهد شد ای ساکنان مکتیش ولوله نمایید زیرا که تمامی قوم کنعان تلف شده و همه آنانی که نقره را برمی دارند منقطه گردیدند و در آن وقت اوشلیم را به چراغ ها تفتیش خواهم نمود و بر آنانی که بر دوردهای خود نشسته اند و در دل خود میگویند خداوند نه نیکویی میکند و نه بدی عقوبت خواهم رسانید بنابراین دولت ایشان تاراج و و خانهای ایشان خراب خواهد شد و خانه ها بنا خواهند نمود اما در آنها ساکن نخواهند شد تاکستان ها قرض خواهند کرد اما شراب آنها را نخواهند نوشید روز عظیم خداوند نزدیک است. نزدیک است و به زودی هرچه تمام تر آواز روز خداوند مسموع است و مرد در در به تلخی فریاد برخواهد آورد. آن روز روز قذب است. روز تنگی و اضطراب روز خرابی و ویرانی. روز تاریکی و ظلمت. روز ابرها و ظلمت قلیز. روز کرهنا و هنگامه جنگ به ضد شهرهای حساردار و به زد های بلند و مردمان را چنان به تنگ می آورم که کورانه راه خواهند رفت زیرا که به خداوند گناه ورزیدند پس خون ایشان مثل قبار و گوشت ایشان مانند سرگین ریخته خواهد شد در روز قذب خداوند نه نقره و نه طلای ایشان ایشان را تواند رهانید و تمامی جهان از آتش غیرت او سوخته خواهد شد زیرا که بر تمامی ساکنان جهان حلاکتی هورناک وارد خواهد آورد. وقتی این آیات رو میخونید متوجه میشید که سفنیا از دو واقعه صحبت میکنه. گاهی از نابودی اورشلیم در اسنای فتح شهر توسط بابلی ها حرف میزنه، اما وقتی صفنیه میگه من ناگهان به زندگی در روی زمین خاتمه خواهم داد، او در مورد بابلی ها و پیروزی اونها صحبت نمیکنه. او در مورد چیزی در آینده صحبت میکنه که تحولی اساسی تر از غلبه بابلیهاست. صفنیادر در ادامه معزش مثل بسیاری از انبیاء دیگه به قوم یهودا خبرهای خوبی هم میده ای امتی که حیا ندارید فراهم آیید و جمع بشوید قبل از آنکه حکم نتایج بیاورد و آن روز مثل کاه بگذرد قبل از که هدت خشم خداوند بر شما وارد آید قبل از آنکه روز خشم خداوند بر شما برسد ای جمعی حلیمان زمین که احکام او را به جا می آورید عدالت را بطلبید و تواضع را بجویید شاید که در روز خشم خداوند مستور شوید تمامی انبیای قبل از اصارت بابل این را موعظه کردند و قوم من که به اسم من نامیده شدهاند متواضع شوند و دعا کرده طالب حضور من باشند و از راه های بدخیش بازگشت نمایند آنگاه من از آسمان اجابت خواهم فرمود و گناهان ایشان را خواهم آمرزید و ایشان را شفا خواهم داد تمامی انبیاء قبل از اسارت پیام توبه و بیداری و این احتمال که خدا اونها رو از تنبیه اسارت بابلیها نجات خواهد داد، معزه کردن. تمامی این انبیاء به قوم یهودا میگند که این امکان وجود داره که خدا مانع قلبه بابلیها و به اسارت رفتن بشه. ما حالا میدونیم که قوم یهودا توبه نکردن و قلبه بابلیها بر اونها واقع شد و به دنبال اون به اسارت رفتن. حتما به متعالیتون ادامه بدید، مخصوصا اگر به موضوع بازگشت سانویه ایسای مسیح و وقایه ای که بخشی از اون واقعه عظیم خواهند بود، علاقمند هستید. بعد ما میبینیم که سفنیا با ما در مورد زمینه ای که شامل صفات و عوامل اون روز عظیم وحشتناک خداوند هست صحبت میکنه. پتروس در نامه دوم خودش در باب سوم خیلی بیشتر از این روز عظیم و وحشتناک خداوند صحبت میکنه کاربورت های پتروس هم در راستای کاربورت هایی هست که ما میتونیم از نبوت سفنی از روز خداوند در زندگی هامون به کار بگیریم. هر دوی این مردان خدا ما رو با یک سوال به چالش میکشند. وقتی انسان میدونه تمامی این چیزهای مادی از بین خواهد رفت نوع رفتاری باید داشته باشه. در باب دوم نبوتش سفنی کاری میکنه که بیشتر انبیای دیگه نکردن. سفنیا برای اقوام غیر یهودی موعظه میکنه که به خاطر آزار رساندن به قوم یهودا داوری خواهند شد. به گفته سفنیا همونطور که در نبوت ناحوم هم دیدیم خدا تنها قوم خودش رو تنبیه نخواهد کرد، بلکه کسانی رو هم که اونها رو مورد آزار قرار دادن تنبیه خواهد کرد. سفنیا شهرهای فلسطینی رو نام میبره. سفنیا موعظه میکنه که خدا قوم خودش رو با مهربانی ملاقات خواهد کرد. و اونها رو دوباره به کامیابی خواهد رسوند اما به شهرهای فلسطینی میگه که شما ریشه خواهید شد و ویرانه خواهید ماند یا داوری رو بر این شهرها اعلام میکنه او داوری بر معاب و امون رو اعلام میکنه ها موعظه میکنه که این شهرها مثل صدوم و قموره خواهند بود او داوری رو بر هبشیان اعلام میکنه او داوری رو بر شهر نینوا اعلام میکنه صفنیا اینطور طور میکنه آن شهر چراگاه گوسفندان خواهد شد و انواع حیوانات وحشی در آن جای خواهند گرفت. خفواش ها و جغت ها در میان ویرانه هایش لانه می کنند و صدایشان از پنجره های خانه های شنیده می شود. در آستانه خانه ها زباله جمع می شود و روکش زیبای سطنهای شهر که از چوب سرف بود از بین می رون. باستانشناسان و مورخین باستانی به ما میگند که نبوت سفنیا مو به مو اجرا شده. اگرچه وقتی سفنیا اینها را موعظه میکرد، به نظر آنها مسخره می رسید. بعد از اعلام این داوری ها در باب دو بر دشمنان قوم خدا در اورشلیم، در باب سه موعظه سفنیا خطاب به قوم یهودا هست. اینها گروهی از کسانی بودند که بسیاری از این ها را مخاطب قرار داده بودند. سفینیا میگه وای بر شهر فتنگیز نجس ظلم کننده آواز را نمیشنود و تعدیب را نمیپذیرد. و بر خداوند توکل نمی نماید و بر خدای خود تقرب نمی جوید. در این مرحله سفنیا با انبیایی مثل میکا و آموس هم عقیده است و به شدت بر ادالت تأکید میکنه و موعظه شدید و لحنی بر علیه بی ادالتی اجتماعی میکنه کنه. سرورانش منظور سروران شهر اورشلیم است. سرورانش در اندرونش شیران قرران و داورانش گرگان شب که چیزی تا صبح باقی نمیگذارند انبیاش مغرور و خianatkaran کاهنانش قدس را نجس میسازند و به شریعت مخالفت میورزند سفنیا با میکا، آموس و اشعیا هم عقیده است و میگه حکومت از جانب خدا تعیین میشه سفنیا بر همون نکته تاکید میکنه که میکا تاکید داشت و میگفت که منظور از حکومت بهره برداری حاکمان و ثروت اندوزی حاکمان نیست هدف از اینکه این افراد در رأس قدرت سیاسی قرار گرفتند این نیست که خودخواهی خودشون رو ارضا کنن یا جیبهاشون رو به هزینه مردم پر کنن. حکومت باید حکومت مردم بر مردم و برای مردم باشه. میکا این رو با جزئیاتش برای ما شهر داده و سفنیا هم همون کار رو انجام میده. حکومتی که خدا تعیین میکنه دارای سه حت هست. اول کاهنینن رو میبینید که موظفن تعالیم خدا رو تعلیم بدن. اون قوانین البته در حکومت بر مردم به کار گرفته میشه. بعد انبیا رو داریم که موظفن مردم رو نصیحت کنند که کارهایی رو بکنند که کاهنین به اونها یاد دادن بعد البته رهبران اجتماعی رو دارید شاهزادگان و کسانی که موظفند این قوانین رو اعمال کنند که توسط کاهنین تعلیم داده شده وقتی حکومت فاسد باشه، فساد در هر ستش وجود داره کاهنین فاسد هستند وقتی کاهنین کلام خدا رو تعلیم نمیدن و برای آن چیزی که تعلیم میدن خودشون سرمشق نیستن مردم سرگردان میشن و قطعا گمراه میشن و نمیدونن که چی درسته و چطور باید زندگی کرد اگر انبیا مردم رو نصیحت نکنند که از کلام خدا اطاعت کنند مردم فاسد میشن وقتی شاهزادگان رشوه بگیرن و فاسد باشن مردم هم به خواب قفلت فرو میرن میکا موعظه میکرد که راه حل نهایی خدا برای تأثیر بر این حکومت اینه که روزی بالاخره خدا دیگه به انسان حق حکومت نخواهد داد. همینطور دیدیم که در باب چهار دانیال هم بر این تأکید شده. خدا به نبوکت نصر وقتی که داشت تجربه 7 سال دیوانگیش رو پشت سر میگذاشت گفت که نبوکت نصر. این خداست که حکومت رو به هر کس که بخواد و تصمیم بگیره میده. وقتی پولس در رومیان 13 گفت قدرت که از طرف خدا تعیین شدن دقیقا منظورش همین بود که خدا حکومت رو تأسیس میکنه. تأکید این انبیای کوچکی نه که این جزی از نقشه خدا بود که حکومت رو به انسان واگذار کنه. به وقتی انسان که موظف بود حکومت کنه فاسد بشه و حکومت رو استثمار کنه، خدا اونها را از حکومت خل میکنه و غضب خودش رو توسط اسارت بر اونها اعمال میکنه. بعد به قول میکا روزی پسر خدا خواهد آمد و به عنوان شاه شاهان و رب و لرباب حکومت خواهد کرد. وقتی انبیا آمدن عیسی مسیح رو نبوت می‌کردن گاهی در مورد اولین ظهور او و گاهی در مورد ظهور ثانویه او صحبت میکردن. در ظهور اولش رو حکومت نکرد اما هایی در مورد آمدن مسیح هست که میگه او می آید و حکومت خواهد کرد وقتی عیسی مسیح تمام شب رو با نیقودیموس سپری کرد یادتونه که به او گفت من تنها پسر خدا هستم و به عنوان تنها پسر خدا تنها راه حل خدا هستم من تنها راه نجات خداوند هستم. به این دلیل باید مسلوب بشوم. وقتی ما از نوع متولد میشیم، عیسی مسیح یگانه پسر خدا نه تنها منجی ما بلکه خداوند ما میشه. چون که در زندگی های ما حکومت میکنه. انبیا این نه حکومت رو پیشگویی کردند. به هر حال اگر شما هر دو ظهور عیسی رو در نوشته های نبوتی و نیز در کتاب های جدید درک کنید که آمدن سانویی او رو پیشگویی کردند، خواهید دید که روزی او تنها پسر خدا، تنها راه حل خدا و تنها راه نجات خدا از نظر حکومت خواهد بود او با اصهای آهنین بر قومها حکومت خواهد کرد و حکومت او هیچ پایانی نخواهد داشت حکومت مسیح همونطور که در کتابهای نبوتی عهد قدیم و جدید داده شده راه حل نهایی خدا برای تمامی مشکلات حکومتها خواهد بود این جوهر معزه سفنیا بود اما یادتون باشه که پیام اصلی سفنیا مربوط به روز خداوند هست. به طور خلاصه سفنیه زمینی روز خداوند را رو آشکار میکنه. وقتی سفنیا روز خداوند رو موعظه میکنه شما میفهمید که او در مورد بلای ملخها و قحطی صحبت نمیکنه. گاهی او شاید به اسارت بابل اشاره میکنه اما اساساً در مورد روز عظیم و وحشتناک خداوند در ایام آخر صحبت میکنه که به تاریخ بشریت خاتمه خواهد داد. وقتی سفنیه روز خداوند را رو موعظه میکنه به محتوی روز خداوند اونطور که بر او آشکار شده دقت کنید روز خداوند همه چیز رو محو خواهد کرد انسان حیوانات وحشی پرندگان ماهیان شریران انواع بشر و تمامی ساکنین اهل زمین رو نابود خواهد کرد این روز عظیم و وحشتناک خداوند هست و محتوای پیام روز خداوند اینه که اون روز همه چیز و همه کس نابود خواهند شد سفنیا همینطور صفات روز خداوند رو آشکار میکنه به لحاظ کلی صفنیا به ما نمیگه که خدا بابلی ها و آشوریها رو به عنوان ابزار داوری خود به کار خواهد گرفت بلکه در این روز عظیم و وحشتناک خداوند شخصا عمل خواهد کرد گاهی مردم بابهایی مثل مزمور 46 دوم پتروس و کتاب حججی رو میخونند و میگن شاید روز خداوند یک جنگ هسته‌ای خواهد بود یادم وقتی شرح کتاب مقدسی روز عظیم و وحشتناک خداوند رو میخوندیم من گفتم حتی خدا هم نمیتونه این کارو بکنه بعد فهمیدم که چقدر جالب انسان امروز قدرتی داره که چنان ابزارهایی بسازه که با حرارت سوزانی که تولید میکنه هر ماده رو روی زمین زوب کنه. پس انسان حالا میتونه کاری رو بکنه که ما فکر میکردیم خدا نمیتونه. و این سؤالی رو پیش میاره. آیا روز خداوند یک جنگ هستهایی خواهد بود؟ این جمله از جنرال آیزنهاور هست که میگفت آیا ما روزی بیدار خواهیم شد و خواهیم دید که در جنگ هستی نابود میشیم و تبدیل به خاکستر میشیم. خب سفنیا به سوال آیزنهاور با یک نه قطعی پاسخ میده سفنیا به ما میگه که روز عظیم و وحشتناک خداوند عمل خدا خواهد بود خدا سلاهای انسانی رو به کار نخواهد گرفت سفنیا عامل روز عظیم و وحشتناک خداوند رو آشکار میکنه. روز داوری به این خاطر خواهد اومد که مردم در مقابل خداوند گناه کردند بنا به گفته او به این دلیلی که روز داوری اتفاق خواهد افتاد، سفنیا به طور معکد و خاص به گناهان ما اشاره میکنه. ثروت بیتفاوتی، بی ایمانی، نائتائتی، اسجان و بی خدایی گناهانیه که او بر اونها تکیه کرده. وقتی به گناهانی که او نام برده فکر کنید، به ملت خودمون فکر کنید. سفنیا قوم خدا رو با گناه بتپرستی و بدخلاقی و عدم خلوص متهم نمیکنه. سفنیا قوم خدا رو با گناهان ثروت بی تفاوتی بی ایمانی نائتاعتی اسیان و بی خدایی متهم میکنه به گفته ای او به خاطر چنین گناهانی روز عظیم و وحشتناک خداوند خواهد اومد. او خلقت تازه ای رو که پیامد روز خداوند هست آشکار میکنه تاکید در تمامی این تعالیم در مورد روز عظیم و وحشتناک خداوند بر این هست که هر ماده ای از بین خواهد رفت بعد از اون خدا آسمان و زمین جدیدی خلق خواهد کرد که در اون عدالت ساکن خواهد بود بعد از خواندن نبوت سفنیا همه ما با دی المودی موافق خواهیم بود که می میگفت دنیا کشتی در حال غرق شدن هست. هدف ما در این دنیا این نیست که این کشتی رو تعمیر کنیم نقاشی کنیم و نجات بدیم اما میتونیم سعی کنیم تا اون جایی که میتونیم افراد بیشتری رو از این کشتی نجات بدیم چون میدونیم که این کشتی در حال غرق شدنه این بدان معنی نیست که نباید علاقمند فعالیت‌های اجتماعی باشیم یا سعی کنیم که اوضاع رو بهتر کنیم بلکه باید وقتی این تعالیم روز وحشتناک و عظیم خداوند رو درک می کنیم بفهمیم که دنیا مجازات خواهد شد به قول خدا دنیا نابود خواهد شد آسمان و زمین تازه خلق خواهد شد جایی که عدالت در اون ساکن خواهد بود صفنیا در عهد قدیم و پتروس در عهد جدید هر دو در موعظه هاشون بر این تاکید دارن مانند دیگر انبیا نبوت صفنیا هم خوشبینانه با بازگشت و نجات قوم خدا خاتمه پیدا میکنه مهم نیست که نبوت های اونها چقدر میتونه مربوط به تحولات عظیم باشه هر کدوم از این انبیا نبوتشون رو با یک خبر خوش به پایان میبرند به ما میگن که یک نجات عظیم خواهد بود یک بازگشت جغرافیایی اسرائیل خواهد بود و یک بازگشت روحانی اسرائیل به سوی خدای خیش صفنیان نبوت منحصر به فردی در رابطه با اون بازگشت به ما میده او میگه که وقتی این بازگشت واقع بشه زبان اصیل احیا خواهد شد و ما مانند زمان قبل از برج بابل همه فقط با یک زبان صحبت خواهیم کرد این پیغام سفنیای نبی هست. پیغام سفنیا مکاشفه ای هست. پیغامی از امور آینده وقتی نبوت سفنیا رو در مورد روزهای آینده میخونید کاربرد عملی شخصی این هست. ما باید چه نوع انسان هایی باشیم وقتی میبینیم تمامی این امور واقع خواهد شد آیا برای روز خداوند آماده شده اید؟ آیا به دیگران کمک میکنید که برای روز خدا آماده بشند؟ شنوندگان عزیز داستان کتاب مقدس از اول تا آخر مربوط به ایسای مسیحه اهد قدیم به ما میگه که اون میاد تا دنیا رو نجات بده آیا این رو باور میکنین؟ اهد جدید به ما میگه که ایسای مسیح آمده که دنیا رو نجات بده آیا به اون اعتماد میکنین عیسی به هر کدوم از ما که به اون اعتماد کردیم و اون رو پیروی کردیم ماموریتی داده شویان عزیز امیدوارم که این کلاس ها شما رو در ایمانتون تقویت کنه تا اینکه جسارت پیدا کنین و بشارت انجیل رو به همه بدین تا برنامه بعدی شما رو تشویق میکنم که محبت عیسی رو حداقل با یک نفر در میون امیدواریم خدایی که شما رو دوست داره و برای زندگی شما نقشه‌ای داره شما رو تشویق کنه و به فراوانی برکت بده